الحمد لله رب الله الله جميع برای صحت تمسک به آن آیا فهض از مخصص لازم هست یا نه توضیحاتی گفته شد و ده اینجا که آیان که قائل هستند به وجود فهض از مخصص و های که قائل هستند که همه قائل هستند به وجود فهض در اصول عملیه از اللی برای مثلت اقامه کردن چون در اصول ما هم برای عمله به آم فحصت مخصص راز هم برای عمل به بر اصول عملیه یعنی هم برای عمل به بر اصول لحظیه مثل اساطر اموم و اساطر اسلام و هم برای اصول عملیه مثل استسهاب اگر قاعد شدیم یا یا افتیار در همه اینها فحص لازم مثل اصول از افلاح فحص, لازم. فحص لازم. این تحس و دلیلش رو عدلهی ذکر کردم یکی از اونها تو تقریبا مشترک بین هر دو هم هست علم اجمالی چون این بحث علم اجمالی رو مربوه استاد هم مطرح کرده از کلمات مرون و غیره بعد یه صحبت اجمالی بشه چون به نظر ما خیلی هم تأثیر ندارم و ازاله صحبت اجمالیش خوبه خواهر نسید زیاده اجمالی کم این راجع به این مسئله خمس دیر روز صحبتهای مرموم اصطاب رو خوندید عبدالله الله ایش رو وجود ردره کردن بعد علم اجمالی رو گفت از راجع به علم اجمالی در کلمات ایشان دو نکته اساسی وجود دارد یه نکته اساسی راجع به علم اجمالی که این علم اجمالی با این خمسی که ما الان میکنیم هم نمیشه مثلا ما به همین کتبه اربعه و فرض کنم مثلا و جواهر و همین کتبه این که مطارد چرا چما احتمالیم در خارجی اینها هم دلیل باشه پس این علم اجمالی مانحله این یک شبه در این جای مانحل میشه یا نمیشه خب شون جواب هم برماردون همونی در کتبه مختبر هست به مقداری که علم اجمالی رو مانحل میکنه مثلا هر سونه اگر حساب علم اجمالی ما با معتبر و غیر معتبر ده هزار رو باشید را تقریبا عددی شونه بکنید اما در کتور معتبر چهار هزار مثلا دریو باشه اون مقداری که احکام الله مثلا هشتر تاثیر 10000. هست درسته ما یه بزرگ به 10000 در کتور معتبر و غیر معتبر اما چون مقدار معلوم ما که داریم حدود هزارت تاست اگر ما در این چهار هزارت هم فحص بکنیم به هزارت تا برسیم اون علم اشماری میشه مثل که انسان دو تا دوستن بلن از ساعت یه دوستن گوش هم هرام گوشده از یک طرف یه یعنی هم دو هم طبیله داره توی یک طبیله پنجاه از اون طرف هم که یک دونه هرام این طبیله پنجاه دار پس در حقیقت موارد معلومش یک چیز بالاتر نشد در یک قبیله پنجاه تا میدونه 5 تا از این پنجاه تا و در این حال هم میدونه 5 تا از این مجموعه 100 تا اینجوریه بزرگ ما هم شده نفرم یعنی اگر در یک قبیله‌ای که میدونه 5 تا هست در این رو تشخیص بده دیگه هم نسبت به اون قبیله اصول جه دیگه نداره هم نسبت به کل بود عرض علم اجمالی منحل میشن این خلاصه دعوای انهلاد مرموم استاد قدسالله الله است این اشکال جوابی شد اشکالی که خود مرمومه های خویی دارن اشکال دیگری. اون اشکال اینه که شما اگر چهار هزار مورد محتمال دلیلی دارید، دارین این کتاب تحارت و رو مراجعه کردین از این چهار هزارت تا تصویم هج تا هزارت ها ما شما که و و سوم نگاه کردیم شما هزارت ها به یه فرس در وقتی یه باید باشه یه که شما در کل فقه فرس بکنیم شما مقدار معنو هزارت بود از چهار هزار در ده هزار با کتب مهره معتملیم شما در 5 و 6 تا هفت و هفت و هفت و باب کتاب از پیدا کردید یه علم اجمالی که منحل میشه نتیجه این علم اجمالی فصلد کل فقه نیست من به یک لوقت وارد بحث بشم اینی که ما بخوایم تحقیق علمی بکنیم در مداره شریعت آیا به خاطر همین علم اجمالی چقدر؟ یعنی این علم اجمالی مدعی و محرک ماست اینا اشکالش اینه که علم اجمالی دایی مطلع نیست علم تا جایی است که اون مقدار معلوم پیدا نشه اگر شد دیگه تموم شد دیگه در بقیه فرق نمی کنیم تعمال بکنیم یه دفع شما میگیم ما شریعت رو بعد این پیدا بکنیم علماء و زردان خور پیغمبر اگرم و مبارکه مجموعی رو باید. ما باید به همین طریقه معلوم از اول بار مراجعه بکنیم. و مثلا ادله رو بدون یه دفعه راه شما اینه یه دفعه راه شما علم مثل مثلا بحثی که در علم اجمالی تو دلیل انصدار هست یعنی به عبارت واضحتر این مباحث علمی رو فقها و اصولیین مثلا تو فقهای ما در حیده از ابواب سعی کردن با این علم اجمالی درست کردن مثلا تو خود باب انصدار اون انتظار باب علم و علمی است ما باید مثلا این که به دوائر مختلف رجوع کنیم به معنا ندارن ما معنا کنیم خیلی شد علم اجمالی دارید ببین اونجا هم از باب علم میشن خب در اونجا همیش شبهه هست در اونجا هم این بحث هست که درست شما علم اجمالی پیدا می‌کنید لكن نتیجه علم اجمالی با به ذهن نیست نتیجه علم اجمالی متو احتیاطی متو بافره ممکنی شما روزون احتیاط حتی دردار مشروعات هم داشته باشه حتی ندیجه خودجیت زنیه حالا من این رو چون دیروز هم یه مطرح کردم میرم این یک جرقه ای بشه در فکر شما که آیا ما میتوان این مسائل علمی رو و اصول رو و فقر رو با همین علم اجمالی حل بکنیم این کافی است شما همین رساله های عملیه که اولش اشتاق ترمیل هستم لاده یا چه باید از شخص معنیتون مشته در آن محتاط همون مقندن نمیشتن بیدیش پس که مثلا تراس های خوبی تنقیه اونجا از همین علم اجمالی باید شده. اینکه یا اشتحال یا تقریب یا احتیاط باز هم علم اجمالی نکته علم اجمالی بس که آیا اصولا شرح طلب علم و تحصیل علم و آشنایی با مدار که احکام با علم اجمالی میشه یا خودش باب دیگری تا روشن شد مثلی که من در بحث لازره از کردم تا این که مسائل اجتماعی رو در اجتماعی با لازره حل بکنم. خب آیا ما میتوانیم جامعه رو با اداره بکنیم کنیم لازره یعنی همیشه اون کفا حد اقل ها هر وقت تو جامعه زره ای پیدا شد که روشی بکرید یه چین جامعه خایناهای روشت نمی فقط صفه ضرر هستیم. در حدی که ضرر پیش نیاد این طوزی هم اونجا داده ببین در ورود در مسائل خیلی مسئله آیا سر این که ما بعد عدل مراجعه میکنیم فوقها مراجعه میکنم به روایات و آیات به اجماعات به طور مختلف مراجعه میشه به خاطر اون علم اجمالی همون علم اجمالی کافی یا نه همون علم اجماعی غیر از این موقع دیگر از اشکال معلومه استاد اینه که اگر ما رفتیم رو علم اجمالی مشکل علم اجمالی تا به اون مقدار معلوم به الاجمال رفی منحل میشه مثلا شما 5 تا کاسه درین میدونه که یکیش نجسه از اولی اشتراک چند تا به دوم نه اشتراک کنه فرض که هم نجزه. این کاسی هم نجسه این کاسه یکی هم نجسه دیگه از 6 تا 4 تا نه اون رو استثنا میشه علم اجماعی منحل شد مخصوصاً روی مبانی این آقایان مثل مرحوم استاد و مثل مرحوم ناینی استاد ایشان اینا معتقدند که سر تنجیز علم اجمالی تعارض و تساوت اصوله مثل مثل مثلا مواظیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی میدونن درکه بین علم تفصیلی میدونن اونو بحث دیگه ای دارن اما این آقایان که تعارض و اصول میدونن همین که دیگه اصول متعارض نشود روی علم اجمالیون از میدونن نقطه جیده. یعنی به عبارت دیگه یک این پنج کاسه به دست یک کاسه معین شد دو نفر بیانش آزاد زمین خودن البته که این کاسه بود که من ساخون تو اینو مثلا انگار آبش گرم با مثال ما یک کاسه که معین شد دیگه اصول تنقیصی در بقیه احزاب مثلا اساس پایه اساس رواه بیمانه بیمحذور مشکل نداره چارو نداره بخاطر اشکار شما خیلی در فرق وارد بشید می‌بینید در کل فقه هزار مورد محتمل هست طبق علم اجمالی فحص می‌کنیم 6 تا کتاب رو که فحص کردیم می‌بینید 1000 تاش مثلا گفتیم ببین این 1000 تا راستی می‌گه در بقیه لازم نیست ف وقتی به اون ملزار رسیدین دیگه در بقیه فص این اشکار اساسی علم اجمالی است لذا این سوال مطرح میشه که ما بعد از پیدا کردن آیا باید همون‌طوری فحص بکنیم یا نه مرزم ناینی یک تقریب دیگری دارند که ما حتی بعد از پیدا کردن باز باید فحض بکنید البته مبناشون و خودتون مدرمون چونه که این هم باشین از عواز مرزم که تکرار میشه اشتالا لده که عواز مرزم ناینی که با باشین با سرکسیاب کلماتی ایشان ارز کنم که مرزم استاد تقریبا میشه و از خود مرزم ناینی شرح بهتری چون مرحوم شاید دوره اخیر مرحوم نایمی هست اینجا را یک شرح مبسود تری نسبت به مرحوم آقی کازمی و آقای کازمی رضوان الله علیه السلام این داده الان که شکل ماکم که من این توضیح داشت خلاصه همه مرحوم چیه؟ این خوب در این توی مثل انحلال ایرزمین شما این و نقطه لکیفی هم هست تثبات و نفیش ببینید مرحوم ده هزار مثلا مورد احتمال مخصص کنم دارم مقیدوین ها داشتیم فرض کردیم الان به هزار تشرتی هزار تشرتی مثلا واقعی بقیه دیگه اصول متعارض دو جایی میشه اصول ترخیصی اشکال نمیشن هم این علم اجمالی با تمامین حرفا باز هم منحل نمیشه نقطه دیگه داره خلاصه کلام مضمونه این اینه که علم اجمالی یک صورت بسیطی داره مثل این که شما روید یا توی این پنج تا کاسه یکیش نجست شد خب شما اینطور میگید من یقین دارم به وجود نجست پنج تا محتمل پنج تا قضیه مشروعه به اولیشا یک قضیه متعقنه وقت اگر قضیه متعقنه شما در یک طرف معایم شد این اناق بالخصوص نجست خب برای یک این انحلال این نیشمالیست این مشکل خاصی ندار اما ذاهباهی اینطور نیست مثل ایشون معلم و استادان این که عقل اکثر هم اغلب اکثر در من همین گیرشن اغلب اکثر اول منحل جین خسروان اگه یه مرا چیز دیگه‌ای بشه حالا مثلا اگر اکثر اینو مراجعه کنیم چه نمیشه چون خودستون بیشون اشار کردین من خیلی نمیخوام تمام بحثایی که اینجا شده چون هم طولانیه هم خیلی مستدل ترام نیست اون کلیاتش و اینا رو بفرمایید کافیه محمودا می‌فرمایید گاهی میشه علم اجماعی خصلتی داره که با علم به یک مقدار باز هم منحل میشه. چرا تو اینگاه می علم اجمالی ما در حقیقت دو تا علم اجمالی است چون نقطه مشترکی دارن خیال میکنیم یکیه مثلا فرض که اینجوری بیدید فرض شما میدونید که شما مجموعه به این ده هزار نفری که توی شهر هستن فرض ده هزار بقال و افتاق رو ماستن پس شما به حدود پونسد نفر از اینها هزار نفر از اینها به دهکارید ترات میکنی ده در هزار در ده در. خب این علم اجمالی است ما کثیف در کسی و و منجز میشه. خب شما اگر رفتین و نگاششون پیدا کردید بودی هزار نفر مسلمه اینا ترک شما دکلشون دادید اون علم اجباری هزار میشه. این سلم. اما گاهی اوقات همین علم اجمالی مثال که زدیم یه خردی گن میاد شبیه همینه یک نکته میکنه. اینطور. شما این از ده هزار نفری که در این شهر هستن ده هزار نفرشون بده و از طرف دیگه هم میدونین اون بدهکاری که شما دارین اسمشون تو دفتر هست عنوان مافد دفتر هست بگذر بگذر که در حقیقت دوتا علم یکی این که در ده هزار هزار, هزار تا مدیونی. یکی این که افرادی که در دفترم به اونها مزیونیست حالا از در دفتر ممکنه همین هزارتا باشن ممکنه غیر اینا ها باشن مردم این حال اینه دیگه اگر شما هزار تا رو پیدا کردیم تربکارتون بودن جا بید آیا علم اجمالی شما منحل میشه میگه نمیشه چون عنوان مافد دفتر محبوب میمونه. یعنی علم اجمالی شما فقط این نیست در بین ده هزار بین ده هزار, هزار تا و ايذان کسانی که, که اسمشون تو دفتره حالا اون دفترم فرض گم شده اون مثلا هم اون دفترم فکر کنید گم شده پس در حقیقت اگر شما به هزار تا بدین چون اون یک عنوانی داره یعنی دو تا ما معنوی اون قضیه به قول شما این ما دو تاست یکی عنوان هزار تا این متقن ماست یک متقن من منفذ دفتره ا ق دفتر همین مشکل اینجاست بهشون منفذ دفتر چون علامت داره همین که علامت پیداکت که میاره چرا همین تمام مشکل آزمین باشبه های خوی میشه به مثلا روشن شد پس من یک ال قضیه مشکوکه دارم که 11 هزار نفرند یک قضیه متعقنه دارم هزار نفر من به اونا مدیونم از این ده هزار نفر یک قضیه متعقنه دوم هم دارم من کانف دفتر من به اونا ها مدیونم سوال اینه که اگر من هزار روشن به نظر فرص مسئله کاملا برای از روشن من هزار نفر رو پیدا کرده سهان خود اونا ها رو دادن. آیا این علم اجمالی مانحل میشه یا نه اون عنوان منف دفتر میمانه چون عنوان منطقه در سرطه قضیه متعقنه ماس میمانه لذا طبیعتا شما نمیتون راجب 9000 هزار نفره اصافر برای اجابه کن اصول ترخیصی جده کن بلکه صحیحش این که اصول به حالا اصول موافع کنیش کن او جاده علم اگه اصاف کنیم نه اصول اگه اصول باشه باید اما از جاده علم باشه مرمون نایینی هم بخواهیم ما این طوریه. ما در احکام شدریه از میدیم ده هزار تا حکم هست تو این ده هزار تا حکم تو بگفت بکنیم میدونیم مثلا سه هزار حکم یقینیه از طرف دیگر میدونیم مجموع ماقض و سائل هم احکام الله ما خصات واقعیه پس دو تا علم داریم از یه ما ما دو تا شده نیستی که قصر باید میشه این برگوزار هزار سرمونی چی شد؟ تصور مطلب کردی؟ شما آهد می میگرمانی شما ده تا مخصص مخصص محتمله ده هزارت میدونیم سه هزارت هاش واقعیه خب شما فرض کردیم به سه هزارت را فصل یه فرصی این به سه تا را من رو میگه نه هنوزم باز فرس میگه خب باید انحلال شد و باید که هم گرسیم قضیه متعقلی ما ما دو تا علم قضیه متعقلی ما دو تاست نه رضای ما یکی یکی این که تو این ده هزار تا سه هزارت مخصص واقعی یکی این که ما مخصص هایی در کتب عرب و در وسال کل مصال دار داریم این ذات علامت رو قدیشون این ذات اونلانه. ما اگر 3000 رو پیدا کردیم این معناش نیست که دوممی هم منحل بشه. دوممی به حال خودش محفوظه. منطق دیگه شده. منطق میگه که اون هر چیزیه. آ اشکال آخوریام آره همینه خلاص. اشکال آخوریام آره همینه. که درسته ما دو تا داریم یکی اجمالیه که و لذا مرقوم دائمی هم عبارات معروفش میگه مافیت اختصار با اظهار مواد اختصاری به واسه معروف ما که یه عنوان آنوان خطوبروه ما دارم اقتضا رو فکر سه هزارتا اون اقتضا نداره خسرت نداره پس مما برای این اون یکی به جای خودش محبوضه اچکالا مرموان آرکوی همه همینه که درسته دو تا هست اما تأثیری نداره چرا؟ شما میدیدون اون سه هزارتان در همین خطوبروه هستی یه جدیه نیست این در حقیقت باید مرموم ناینی و آقای کوئی رو واقعیت به اصطلاح نوز ما آماری اعتماد رو کنن فعلا دو طرف دعوا دارن ادعا دارن دعوانی ادعا ادعای دو طرف اینه مرموم ناینی می با علم به این هزار مورد اون مافل کتبه در وسائل اون مافل وسائل منحل نمی شه آقای کوئی خلاصه دارم تا بستیدیش این طورانی ای فهم بودن آن مراجعه خود ا آج کوئی مفصل نہ کرو، عامان حل بشه. یعنی اونی که در به اصطلاح ما داشتیم سه هزار تا، این همون چیز در ماوراء کتب اولی این همونی که در به اصطلاح مسائل چیز دیگه ای نیست. 3000 خب همون، یعنی به اصطلاح این چیز دیگه ای نیست. اون 3000 تایی که ما داریم، چون در اون غیر کتب اونا مست اعتبار پیش نیست. اونی که به اعتبار هست. همین یک در خصوص اربعه و کتب متعارفه اصحاب وجود دارد این خلاصه کلام مرحوم نائینی و اشکالات و استاد هم برای اینکه مقدار با وقفه بکنم و بعدم با عبارات اصحاب آشنا بشن یک خلاصه ای از کلمات مرحوم نائینی و از این کتاب خود ایشان حوادل اصول و استفالاقم از مناظرات و تقریرات استاد بود فوائد حالا از حوادل اصول جلد دو علومی 1 و رو با هم شاکردن صفحه بندیش با هم اما فرسش 1 و 2 به زمین که شما که تو جلد 1 و 2 صفحه 539 با عنوان مرحله سوم بعد ایشون وارشد من مختصر فرچه هم نرم می‌کنم بعد براتین به مطالبی که مرحوم استاد داشت ایشون ان که نقل کردیم از مرحوم استاد ایشون بحثی را مسته کنه اینجوی خود را کنید لا اشکال فی عدم جواز اخذ به اصول لفظیه اینه اصالات عموم و اطلاق قبل الفحث عن المغجد و المخصف یعنی که انما از این عبارتی اشان معلوم میشید بحث حقیلی جنبه علمی داره دوست بوده ما شما را معطلی کردیم چونیتون لا اشکال چونی بحث به بحث نیستیم قطعی سیجید خب لا اشکال به بحث نیستیم مسلمت پس اون چی که علامه داریم تقریب می بیشتر جنبه علمی داره نه جنبه واقعی و عملی این یک مطلب بعد همونطور که بعد اصول لحظیه مثل اساطرمون و اطلاق بله کمان اینکه اصول عملیه هم نمیشه ایش بحث و اینجوری مطرح کردن از کردم من از کتاب محصول فخرازی رو خوندم اون اونی که در کتاب محصول آماده و در کتاب آناماده آماده به فرق بین اصالات الحقه و اصالات العمومه که هر از اصول لفظی هستن دیروز توبیادش بذارد پس معلوم شد که ترک مسئله در اصول متعخیر شیعه در این ترکسابی اخیر شیعه غیر از طرح مسئله در کتب احل سنته تحجب از نارونایین اصلا اون نطقه بست و مطرح نگردن و دیروز توبیادش هم بذارد نکسی کیشون مثال کن، فرق این فرق دین سه در اصول لغزی و اصول آمادی. بعد هم رو که از استاد نگرفتیم خوندی، می‌شوند فرمودن سه در اصول آمادی، در, در اصول مختلی، در اصول لغزی، در اصول معانی، توضیحاتش بوده و دیگه تکرار نمی‌کنه. و توضیحات مطلب هم بوده که این دو تا انصافم با همدیگر هر بین ندارند. <تص> یعنی اگر تو درست داری اصول لحظ عملی در روتوی مختزی هستند درست اما تو اصول عملی هم حساب لحظی هم حساب کتاب ندارن بعضا از مانه هم از مختزی حساب و کتاب درستی نداره و اصولا فرض هیچ پر بیدنی جهت نمی کنه یعنی نکته خاصی نداره اگه نکته برای فرض در هر دو هست و که ما یا فرض کردیم با بکنه سیکیم تنجز پیدا کنه با یکی از اون اصول اگر جاری بشه به شرمی که دادیم هست از از هر را ام بعد ایشان دو وجه برای اصول عملیه درکن کنند طبعا مرادشان اصول عملیه در شبهات و حکمیه مورده نه وجه اول که اقل یستقل و با انهو لاغود دل احب من المشد تحصیل مرادات مولا کیشون به شرمی دادن که ما اون توضیح که من دسته بوده پیش عرض کردم واضح تر میشه از عرضیشون عرض کردیم مکنبت باید دیگه مقدار تحرک بکنه تا حد معرضی مولان هم شد این توضیحش گذشت. این وجه اول پس سوال عرض تحرک بکنه فخص بکنه تا به حد محرزی. و اما الوجه ثانی علم و اجمالی به ثبوت احکام الزامیه علا خلاف اصول چون علم اجمالی داریم این بعدم این علم اجمالی رو دو راه میدونی یکی این علم داریم که شریعت داریم شریعت بزن احکام و نمیشه یکی هم این که میدانیم وظیفه ما رجوع به این کتبی که الان در اختیار ماست این در بحث انتداد به مناسبتی و در بحث وجود خبروانه توضیحاتش جاده شد حتی بعضی ها معترضن که هم ما از اتباع واقع عوض شده به اتباع این مداره از عارف کردی که اینها واخلاب تحریرا حالا چون اینجا ایشون اشاره اجمالی کرده ما هم اشاره اجمال تفاصیل رو هم این راجع به اصول عملیه باشه علم این یکی یکم باز تخص بشه تا حد معقول و اما وجهان به اصول لحظیه و اساطر یکی چیزی علم اجمالی یکیش علم اجمالی این شبیه همون اصول عملیه یکیش هم همون نکته ای بود که از استاد نبر کردیم. اون این که در این شریعت مقدسه بناقر اینه که مخصص و مقید منفصله توضیحاتش گذاشت دیگه خطر نمیخوام بکنم. حتی گفته شد که در این شریعت مقدسه ممکن است مخصص بعد از دویس سال بیار بعد از دویس سال مثلا سال بیار این که ما داریم از همیری سالهای دویست دو دو دو و دو اومجله بعد از 200 سال این در این شریعت مقدس این فرضا باید فرض بکنیم یعنی به عبارت دیگر اگر بنا بود که شریعت مقدس مثل همین قوانین بشری باشه تو یه قانون عام رو که اجرا ما با او قانون عمل می‌کنیم تا خاصش ما برسه فرض لازم نیست اما در شریعت مقدس بنا این نیست بنا این است که هم زمان پیغمبر بیاد خاطس و مقیل هم مثلا زمان ما رو ساده زمان از رزا بیار چون همچی بنایه هست این بنا اقتضاب میکنه که ما فحص کنیم این نکته را هم ما یک مناسبت ایسا را که متن مطمئن کردیم ده همین بحث یعنیم توضیحات از کردیم که مگر مراد اینها از مخصص مراد مجموع امور باشو نه از اینا از از کیفیت از از از از چون توضیحاتش بوده از از از از و هم بحثی کمی خب. بعد ایشان اشاره کردم که به مایوش که وقت ایشان یک اشکالی بر علم اجمالی کردن چه در اونجا و چه در جای دیگر که از آی خویی نعر کردیم که اگر ما طنس بکنیم در اون مقداری که در اختیار ما هست هنوز احتمال میدین بعد بازونزار باز اکثر طنس بکنیم صفحه 542 ایشون متعجنون خوندید چیزی مخاطر جا میدن که یک نوع تغییر عبارت با آر خویی دار مراجعه همون صفحه 542 هم جواب دادهند ولی که نیوم که دفعوش چون دیروز خوندید باز عبارت رو که تکرار اون وقت در صفحه پونستار همین اشکال آقای خویی رو بازم تحبید شد. اونی که اگر ما یه مدار فرمز کردیم پنج تا 6 تا هفت تا اشت کتاب رو اون مقدار مخصص و مقید پیدا کردیم نصبات به یه فرد رازمیست این تو صفحه پونستار چلتر این همون اشکالیست آقای خویی گفتن و پاش موندن آقای خویی اشکالی دیمیم این اشکالیه. چه فرای اشکال من اشکال. جواب. نه این اشکال قویه. جواب ناینی کافی نیست. خب این اشکالی که کتاب پیدا آمده تصادفا اگر من یه روز با خودم اگر محاظرات رو چند تا از این بکنم همیشه اوضاع همیشه امتعبه. واضح تر ما اما اینجا عبارت مرحوم نائمی بر برمیشتی سفایتو اون فهم دارد بیدار سه در سه در سه در اینجا کلمات مرحوم آقای نائمی مفصل و مرفض تر تا نسبت به کلمات مرحوم آسان قدس الله در این چاپی که دست من هست را نمارا اون یکی دیگه فرم می جز پنج در این چاپی دستانه صفحه 257 چون میگوی اینوقات عبارات واضح هیچ من هیلکتر صفحه هست می که ولی آقا اونهاد 26 می میشه بردار میگوی اینوقات عبارات باید فرم می کنم آروم نمیر و علیه اشکار اون آخر که سه چهار ست خوبی نوشتن وانن مخصدی لهو جوب الفت خوب در خط بکنی از این باب وارد شنن از, از یک مسئله ای که باید دوش کار بشه اصولا آیا ما در مسائل علمی در مسائل فیزیک شیمی در مسائل جامعه اشترانسی از راه علم ایسوالی همیشه وارد میشینیم؟ اینا هم ها بگم ما تو مسائل شریعت از این راه وارد میشینم راه علم ایسوالی اگر این راه باشه مختربی این راه است ما بیه مقدار رسیدیم که مقدار معلوم به اجمال ما بود دیگه لازم نیست وافیدان بزنیم مشکل کار اینه یعنی باید نقطه فحص چیه وجودی این علم خوب ان المخترب الوجوب الفحص و ها در علم اجمالی تبع طبیعت الحال ان هو انما ان ما یختزی وجوبا حسب مادام لم یحل فیرا هل علم اجمالی به زفر به مقدار معلوم به اجمال لم یکن لمره مختزن لم یکن مختزن لوجوب فحص بعد او لامه ها را ده این سه سف شد این اشکال آخری که استاد مطرح کردن این اشکال رو هم مرمانه های خودشون رو بودن در استادشون گرفتن نایینی هم در این صفحه 543 و اما تقریر الاشکال علا وجه نیشترک و بی البابان ما را از در اینجا اصول عملی ها لفظیه فحاسه رو علم اجمالی الى آخری ایشون در اینجا بیشتر حدود یک سرطه کمتر شهر دادن شهر مران نایمی بهتره یه نقطه اینه یه نقطه ایم آلوان ارزو سان رسون خیلی ملو نقطه این ما کنیم بکنه آلوان نقطه این کلمه به زفره بزمجدار معلوم به الاجمال که اینجا هم بر این تا آخر بحث آرو چند بار تکرارش کردم این تغیرات رو چون درس هم ندارم تو این تغیرا چند بار آماده به زفره به مقدار, به مقدار معلوم به اجماع از نظر ادبی مقدار الفلام نمیخواد به مقدار معلوم به اجماع نه به مقدار معلوم به اجماع یعنی فحت ما ظفر ما به مقداری که اون مخ به اصطلاح به مقدار اون معلوم به اجماع اون معلوم به اجماع ما نزاست به هزار تا برسید به ما بی مقدار اش هم با... صحیح است ای, ای بلا الا نط المطاهر به صحیح ترش به مقدار معلوم به اجماع مثل, مثل خبر واحد چه میتونن از خبر واحد متعارف صحیحش خبر واحد نه خبر واحد اینجا صحیح اینه و مقدار نه اندازه در اینجا مورد اندازه است این که لفظ جا مثلا خواهد اضافه بلقل ما قدر کرن نه به قدر کر قدر کرن نه قدرن کرن به مقدار کر برسته اضافه بلقل ما قدر کرن لا زوشه البته اونجا هم بازه اشکال منطقی دیگه هم داره آبین و علمای ما علم علم در کتاب ها این حدیث رو به مقدار نعمه کردن به مقدار کردن به مقدار کردن اما ابو عوش که انصافن امامون فی الهدیث و لغه و انصافن خوش فهمه، اشون قدر رو قدر کردن قدر رو معنی تخمین گرفته تقدیر یعنی اگر آبی روز این بیوزن ریخته که اگر این آب تخمینا جمع بشه اندازی کرد میشه تخمین کرد قدر رو معنی تخمین این دي مانيش الان من اول نقطه ام میخواستم وارد بشم به اون مسئله علمی به زهر به مقدار معلوم به اشمار به اندازه اون معلوم یعنی مه... نه نعل مقدار یعنی ما معلوم به اشمار چقدره اندازه بدون مغ... به مقدار اون یعنی هزار تا دیگه که این همونه چرا گفتن یعنی اون همونه نه به اندازه اون روشن شد زرافت اشار روشن این چون چند بار ایشان شاید پنجیگه خود رو نمید من نمیخوام بکنم سفیه فران و فران. از این سفیه دیست و فنجه و هست اله باقر ایچون همش دارن بل مقدار المعلوم از نظر فنی فنیتر بل مقدار المعلوم به رجمان چون اگه گفتیم بدون مقدار المعلوم یعنی ما همینه میدونستیم نه ما نمیدونیم این هزار سایی که پیدا کردیم علم ما درست این اندازه اون مقدار علم است این مساوی با اون م... معلوم ما از به مساوی آن معلوم به اجمال مقدار یعنی به مساوی آن نه ان مساوی المعلوم به اجمال مثلا ما نمیگیم به المساوی المعلوم به اجمال ها نمیگیم به معادل المعلوم به اجمال اون درس هم نادریشیم با این که خودشون عربند آشنا برای هم هم شد این یک زرافت تعبیری داره از من که خوشم میاد اشکال تو مورد نقصی بکنم و چون خوشم میاد که افراق نوشتارها و زرافتهای نوشتاری رو کاملاً به فکر چون انسان عادت کرد دیگه از خیل و بشتر رو این اشکالی است که مرهوم نایمی کردن روشن شد و جواب دادن آبوزن بعد ایشون بلا که یوم که مرحوم این در همه صفحه 154 شروع که جواب دادن وقت جواب ایشان اینه این آخر اینه. اینه ما نهنفید این در احکام یکون من علم اجمالی المعلم این کلمه معلم رو ایشون تکرار کردن معلم داری جنب علامه چون میگه علم اجمالی مایی که زوالامه است که بلا و وقت هر دو منجزم ما می‌دونیم توی 1000 تا مخصصات واقعی هست و می‌دونیم تو کس و عرب مخصصات واقعی هست. این کس و عرب، اگر دلیوشیم معلم، اون یکی می‌شه قید معلم. پس مرادیشون به معلم این ظات علامه و علامت داد. اون کس و عرب. و اشکالشونه که ای این علم اجمالی منحل نمیشه. همه های کوهی اشتار میشه سرداشون افکری بکنید که دیگه رو معرف کردن اصلا چه زابطی از این بی میشه یا نمیشه راه ایش چیه اصلا اولا بحث اولی همه توش های کوهی انسان، گردن به نظر ما اشکال های از یک زابطی یه فکر مکینه ما نمیتونیم مواحص علمی رو بر اساس دوی علم ایجمالی تفسیر بکنیم خوب درد بکنیم ما نمیدونیم درسایی در حوزه درسایی در حوزه میشه زحمتا یک میشه فقط به خاطر علم اجمالی تفسیر بکنه این یک دو آیه انحلال قائل بشه میانه صلی الله علی محمد و و